این داستان جان وفادار یکی بود یکی نبود. زیر گنبد آبی آسمون پادشاهی بود که سخت بیمار شده بود و به ادامه زندگی امیدی نداشت. او در بستر مرگ به اطرافیان خودش گفت جان وفادار را نزد من بیاورید. جان یکی از خدمتکاران مورد توجه پادشاه بود که سالهای سال وفادارانه در خدمتش بود. وقت خدمتکار وفادار کنار بستر پادشاه رسید، پادشاه بهش گفت دوست مورد اعتماد من، احساس می کنم عمرم سر اومده. من غیر از پسرم هیچ نگرانی دیگه ای ندارم. او کم سن و ساله و هنوز نمی تونه روی پای خودش بیسته، اگر قول بدی اون چرا لازمه مثل یک پدر بهش بیاموزی آنگاه چشمانم رو میبندم و آسوده از این دنیا میرم جان وفادار پاسخ داد قول میدم هرگز اونو تنها نذارم و با وفاداری در خدمتش باشم حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه پادشاه گفت حالا میتونم با خیال راحت و با آرامش کامل خودم رو به مرگ تسلیم کنم. بعد از مرگ من تو باید همه گوش و کنار قصر و همه اتاقها و ها و سردابه ها و گنجهای پنهان اونو به پسرم نشون بدی. ولی اون نباید وارد آخرین اتاق سرسرای بزرگ بشه چون مجسمه شاهزاده گنبد طلایی اونجا قرار داره. اگر چشم پسرم به اون مجسمه بیفته عاشقش میشه و اون وقت بد جوری به درد سر میافته. تو وظیفه داری که ازش مراقبت کنی. جان وفادار دست پادشاه پیر رو در دست خودش گرفت و بار دیگه قول داد که مطابق میلش عمل کنه. وقتی خیال پادشاه آسوده شد، سرش رو روی بالش گذاشت و به آرومی به خواب ابدی فرو رفت. بعد از اینکه کفن و دفن پادشاه تمام شد، جان وفادار، اون که پادشاه در بستر مرگ بهش گفته بود با پسرش در میان گذاشت و گفت من سر قلم ایستادم و وفادارانه به شما خدمت می کنم. همونطور که در خدمت پدرتون بودم. حتی اگر این خدمت به قیمت جانم تموم بشه ازش دریق نمی کنم. وقتی ایام عزاداری تموم شد جان دوباره سر صحبت و با شاه جوان باز کرد. حالا وقت اون رسیده تا به ملک و املاکی که از پدرتون بهتون رسیده سرگشی کنین. من آمادم که اول از خود قصر شروع کنیم. بعد اونو برد تا از سرسراها اتاقهای زیبا و گنگینه های ها بازدید کنن. اون فقط یکی از اتاقها رو به شاه جوان نشون نداد. همون اتاقی که مجسمه خطرناک در اون بود. مجسمه بسیار زیبا بود و چنان عالی تراش خورده بود که هر بینندهای را با یک نگاه مجذوب میکرد. زیبایی رنگ و گیرایی شکل مجسمه در دنیا نظیر نداشت. پادشاه جوان که دید جان وفادار بدون اینکه در این اتاق رو باز کنه از کنارش رد شد پرسید چرا در این اتاق برام باز نمی کنی؟ جان جواب داد چیزی در اونه که بسیار خطرناکه. پادشاه گفت همه چیزهای این قصد رو دیدم پس این رو هم باید ببینم. همونطور که این کلمات را عدامی کرد به طرف در اتاق رفت و سعی کرد در اتاق رو به زور باز کنه. جان مانه شد. اون عقب کشید و گفت من به پدرتون در بستر مرگ قول دادم که نزارم اون اتاق ببینید. مطمئنم که اگه زیر قولم بزنم برای هر دو ما مصیبت به بار میاد. پادشاه گفت برعکس اگر من وارد اون اتاق نشم تباه میشم. چون تا زمانی که با چشای خودم نبینم توی اون اتاق چه خبره شب و روز و آروم و قرار ندارم. تا اینکه این در رو باز نکنی از اینجا تکون نمیخورم. جان وفادار وقتی پافشاری پادشاه جوان را دید، فهمید که اسرال بیفاید است. با قلبی فشورده، در حالی که آه می کشید، کلید اون اتاق را از انبوه کلیدها برداشت و در اون اتاق را باز کرد. وقتی در باز شد، جان وفادار جلوتر وارد اتاق شد و خواست اون مجسمه رو بردار و پنهان کنه، ولی بیفایده بود. پادشاه که روی پنجه های پاش بلند شده بود، مجسمه را رو از روی شانه جان دید و به محض اینکه چشم پادشاه به پیکر زن زیبا و جوان افتاد که سر تا غرق در طلا و جواهر بود، بیهوش شد و بر زمین افتاد. جان وفادار پادشاه و بلند کرد و در حالی که اونو به طرف اتاق میبرد، با اندوه با خودش گفت: مصیبت از همین حالا شروع شده. معلوم نیست چه بر سرمون خواهد اومد؟ سپس کمی شربت به پادشاه داد و اونو کم کم به هوش آورد. همین که پادشاه دوباره هوشیار شد، پرسید اون مجسمه مجسمه چه کسی بود؟ جان وفادار جواب داد شاهزاده گنبد طلایی. پادشاه جوان گفت: عشقی که اون در قلب من به وجود آورد آنچنان شدیده که اگر همه برقهای درختای دنیا زبان من بودن، باز هم نمیتونستم چنین عشقی را همونطور که در دلمه توصیف کنم. از این پس زندگی وقتی برام ارزش داره که در پی یافتن اون باشم. تو جان وفادار من هستی و باید تو این راه کمکم کنی. خدمتکار وفادار به راه‌های زیادی فکر کرد که بهترین راه رو پیدا کنه تا پادشاه حداقل بتونه شاهزاده خانم رو ببینه. سرانجام فکری به نظرش رسید و اونو با پادشاه در میون گذاشت. جان وفادار گفت: همه چیز دور بر مجسمه شاهزاده خانم از جنس طلاست. از میز و صندلی و کاسه و بشقاب گرفته تا ها و ها. شما در قصر پنج تن طلا دارید. باید همه اونها رو به دست زرگر بسپرید تا از اونها اشیای زینتی مثل گلدون، پرنده و جانورای وحشی درست کنه. به محض اینکه این, که این سفارش ها انجام گرفت، سفرمون رو شروع می کنیم تا بخت خودمون رو آزمایش کنیم. با این پیشنهاد پادشاه تمام زرگرهای قلمروش رو فراخند تا شبان روز کار کنن و سفارشهای اونو هر هرچه زودتر آماده کنن. زرگرها شب و روز کار کردند تا اون اشیای زیبا رو آماده کردند. جان وفادار هم یک کشتی فراهم کرد. اونها خیلی زود سوار کشتی شدن و با احتیاط را افتادند شاه و خدمتکار وفادارش برای اینکه شناخته نشن لباس بازرگانا رو به تن کردند. پس از طی راهی طولانی و سفری خوش به شهری رسیدند که شاهزاده خانم گنبد طلایی در اون زندگی میکرد. جان وفادار پادشاه و در کشتی تنها گذاشت و خودش در حالی که کمی از زینت آات کوچیک و طلایی رو در جیب گذاشته بود پیاده شد. او قبل از رفتن به پادشاه گفت، احتمالا شاهصاد خانم رو با خودم به عرشه کشتی میارم تا اون ملاقات کنین. گلدان طلا رو در جای قرار بدین که خوب دیده بشه. کشتی و هم با پرچم و نوار طوری تز این کنین که انگار جشن بزرگی در پیش داریم. پادشاه جوان قول داد که این کارها رو انجام بده. جان وفادار به ساحل رفت و راه قصد رو در پیش گرفت. وقتی جان وارد محبته قصر شد دختری زیبا رو دید که با کوزه طلایی از چشمه آب برمی داشت. دختر همونطور که دستش رو در آب خروشان و پرتلالا کرده بود سرش رو برگردوند و چشمش به مرد غریبه افتاد. ازش پرسید تو کی هستی؟ جان هم در صندوقچه رو که به همراه داشت باز کرد و محتوای اونو به دختر نشون داد و گفت من یه بازرگانم دختر کوزش رو روی زمین گذاشت و فریاد زد چه چیزای زیبایی بعد ادامه داد شاهزاده خانم باید اونها رو ببینه او به این وسایل زینتی خیلی علاقه داره حتما همه اونا رو میخره اون دختر از خدمتکاران شاهزاده خانم بود برای همین میتونست اون مرد رو به داخل قصر ببره تا چشم شاهزاده خانم به وسایل زینتی افتاد از خوشحالی پر در آورد و گفت چقدر عالی پرداخت شده من باید همه اونارو رو بخرم جان وفادار گفت من خدمتکار یه بازرگان ثروتمندم که مالک این اشیاءه. اینا رو که میبینی در مقابل اشیای گران قیمتی که اربابم در کشتی داره ناچیزه شاهزاده خانم پرسید نمیتونی اونا رو نزد من بیاری جان جواب داد نه نمیتونم روزها طول میکشه تازه اونقدر زیاده که در قصر شما جا نمیشه این حرف باعث شد شاهزاد خانوم در تصمیم خودش تجدید نظر کنه او که وسوسه شده بود رو ببینه سرانجام گفت منو به طرف کشتی راهنمایی کن میان ببینم گنجینه های ارباب چیست؟ طولی نکشید که جان وفادار شاهزاده خانوم زیبا رو با خود به کشتی نزد پادشاه برد. در راه از فاصله نزدیکتر به شاهزاده خانوم نگاه کرد و دید که اون حتی از اون مجسمهی که در قصر دیده بود زیباتره. قلب جان از شادی لبریز شد. به کشتی که نزدیک شدن به شاهزاده خانوم کمک کرد تا به کشتی سوار شه. بعد هم آهسته نزد ناخدای کشتی رفت و بهش گفت که با سرعت تمام از ساحل دور بشه. ناخدا دستورش رو اجرا کرد و در عرض چند دقیقه به سرعت از ساحل دور شد. در این میان پادشاه سرگرم نشون دادن اشیای قیمتی به شاهزاده خانم زیبا بود و اونو به قسمت‌های مختلف کشتی می‌برد و ظرف و ظروف و های طلایی و بقیه وسایل تزئینی رو بهش نشون می‌داد. پادشاه با شاهزاده خانم رفتاری نرم و نجیبانه داشت. زده خانم از دیدن اشیای طلایی چنان زغزده شده بود که متوجه نشد کشتی از ساحل فاصله گرفته. بعد همچون فکر میکرد جوان یک بازرگانه اشیای زیادی رو بهش سفارش داد. از او به خاطر ادب و نجابتش هم تشکر کرد و خواست اونو تا ساحل همراهی کنه. اما وقتی به انتهای عرشه اومد، تازه متوجه شد که کشتی از ساحل دور شده و با سرعت در حال حرکته. وحشت زده فریاد کشید، من فریب خوردم، من اسیر یک بازرگان شدم که میخواد منو بکشه. پادشاه دستای اونو تو دستش گرفت و گفت، نه من بازرگان نیستم، من پادشاه و مانند تو در یک خونباده سلطنتی به دنیا اومدم، فقط عشق شدید من به تو باعث شده که من با حیله تو رو به اینجا بیارم در واقع عشق تو اونقدر شدید بود که وقتی اولین بار چشمم به مجسمت افتاد بیهوش نقش بر زمین شدم وقتی شاهزاده خانم این حرفها رو شنید خیالش کمی راحتتر شد و رفتاری شایسته با پادشاه شجاع و جوان در پیش گرفت به طوری که تا پیش از پایان سفر پذیرفت همسر پادشاه جوون و خوشسیما بشه. سفر خوشی بود. پادشاه در حالی سوار برکشتی بر آبها میراند که در کنار همسر زیباش احساس شادی بسیاری میکرد. یکی از شبا پادشاه کنار همسرش نشسته بود و جان وفادار هم نزدیک اونا عود می نوخت که سه تا کلاق پریدن و روی تناب دکل نشستند. جان متوجه اونا شد دست از نباختن کشید و گوش فرا داد تا حرفای اونا رو بشنوه چون اون زبان کلاخ ها رو میفهمید یکی از کلاخ ها گفت این همون شاهزاده خانم سرزمین گمبد طلاییه که قراره با این پادشاه ازدواج کنه دو می گفت ولی ازدواج اونا سر نمیگیره سومی گفت اونا که کنار هم هستن اولی با صدای رسا گفت این مهم نیست به محض اینکه به خشکی برسند اسبی که هر برای پادشاه میارند همین که سوار اون اسب بشه اسب به سوی آسمان پرواز میکنه و پادشاه رو به جای دوردست میبره و او هرگز برنمیگرده دومی پرسید راهی برای نجاتش وجود نداره کلاخ گفت چرا راهش اینه که یکی از همراهان نزدیک پادشاه اسب رو با گلوله بکشه ولی چه کسی از این جریان سر در میاره؟ حتی اگر کسی از این جریان با خبر بشه و اونو بر زبان بیاره پاهاش سنگ میشه کلاغ دومی دوباره گفت از اینا گذشته حتی اگر اسب کشته بشه و پادشاه نجات پیدا کنه باز هم نمیتونه با نامزدش عروسی کنه چون وقتی وارد قصر بشه یک دست لباس با شکوه عروسی در یک سینی ای به اونها هدیه میشه در ظاهر این لباس از طلا و نقره درست شده ولی در واقع از جنس غیر و گوگرده و همین که شاهصاد اونو بپوشه تا مغز استخونش میسوزه کلاغ سومی پرسید آیا چاره ای براش وجود داره؟ کلاغ گفت البته که وجود داره اگر کسی با دستگش لباس رو برداره و اونو در آتش بندازه شاهزاده رو نجات میده ولی اگر کسی مطلب رو بفهمه و اونو بر زبان بیاره تا کمر سنگ میشه کلاغ سومی گفت حتی اگر با آتیش زدن لباس عروسی پادشاه از محلکه نجات پیدا کنه باز هم به وسال همسرش نمیرسه چون در شب جشن عروسی وقتی اونا در حال پایکوبی هستن شاهزاده خانم ناگهان بیهوش بر زمین میافته و به حال مرگ میفته. فقط اگر کسی سه قطره خون از شانه راست شاهزاده خانم بگیره و دور بریزه میتونه اونو نجات بده. این بار اگر نجات دهنده لب کنه که موضوع چیه؟ بیدرنگ از سر تا پا سنگ میشه و مثل مجسمه بی حرکت میسته. همین که گفتگوی کلاخ ها تمام شد پرواز کردن و رفتن. جان که حرفای اونا رو شنیده بود خیلی غمگین شد و به فکر فرو رفت. پس از مدتی تصمیم گرفت ساکت باشه و کلمه ای از حرفایی رو که شنیده بر زبون نیاره. تازه به خوبی میدونست که اگر لب به سخن باز کنه به قیمت زندگی خودش تموم میشه همین که به خوشگیری رسیدن جان دید که اون که طلاق پیش کرده بود به وقوع پیوست در ساحل یک اسب کهر و عصیل برای پادشاه آماده کرده بودن. پادشاه با دیدن اسب گفت به به چه حیوان باشکوهی برای من آوردن الان سوارش میشم جان وفادار جلو رفت و با عجله تپانچه را از جلدش بیرون آورد و با شلی که یک گلوله اسب کشت. بین خدمتکاران که کمابیش به جان حسادت میکردند سر و صدای برپا شد. اونا می‌گفتن جان چه حق داشت که این حیوان اصیل رو بکشه. اون هم وقتی که اسب آورده بودند تا پادشاه رو به قصر ببره. شاه به خدمتکارها تشر زد که ساکت بشن و گفت بذارین جان هر کاری دلش میخواد بکنه اون به من وفاداره و میدونه چی کار کنه طولی نکشید که وارد قصر شدن لباس عروسی با شکوهی در سالن پذیرایی روی یک سینی نقرهی قرار داشت به نظر میرسید که لباس از تارهای به هم بافته طلا و نقره درست شده پادشاه جلو رفت تا اونو برداره اما جان که دستکش به دست کرده بود شاه رو کنار زد و چنگ زد و لباس رو برداشت و انداخت توی آتیش دوباره سر و صدای خدمتکارا بلند شد و گفتن اون لباس شاهزاده خانم و سوزونده پادشاه جوان دوباره داد زد اهمیتی نداره اون میدونه داره چیکار میکنه اون جان وفادار منه پس از چندی که مراسم عروسی شروع شد ملکه در سالن زیبایی پایکوبی کرد و جان محو تماشای اون بود که ناگهان رنگ روی ملکه پرید و مثل یک مرده نقش بر زمین شد جان با عجله ملکه رو بلند کرد و به یکی از ها برد دوباره اونو کف اتاق خوابوند بعد زانو زد و کنارش نشست و از شانه راستش سه قطره خون مکید و به زمین تف کرد درست در همین لحظه ملکه نفسی عمیق کشید و از روی زمین بلند شد در تمام این مدت پادشاه با تعجب به کارهای جان نگاه میکرد و سر در نمی آورد که چرا از این خدمتکار وفادار چنین حرکاتی سر میزنه بالاخره از کوره در رفت و فریاد زد جان را دستگیر کنین و به زندان بندازین صبح روز بعد جان رو نزد قاضی بردن و به مرگ محکوم کردن. اون بعد از اینکه محکوم شد در حضور پادشاه زانو زد و گفت هر که به مرگ محکوم بشه حق داره از خودش دفاع کنه. آیا من همین حق رو دارم؟ پادشاه جواب داد البته که این حق رو داری. جان وفادار گفت به من تهمت زدن. من در همه شرایط صادقانه از پادشاه هم دفاع کردم بعد تعریف کرد که در کشتی چه شنیده بود و توضیح داد که دست به هر کاری که زده به خاطر حفظ سلامت پادشاه و ملکه بوده پادشاه با شنیدن حرفای اون فریاد زد جان وفادارم منو ببخش اونو بیارید باید زندگی جان رو نجات داد ولی دیگه دیر شده بود چون با آخرین کلماتی که بر زبان جاری شد خادم وفادار به مکافاتی رسید که کلاخها گفته بودند، اون بیجان بر زمین افتاد و سراپا سنگ شد شاه و ملکه سخت آزرده شدند. پادشاه گفت جان وفادارم من چه پاداش زشتی به محبتهای تو دادم بعد دستور داد مجسمه او رو ببرند و در اتاق خواب نزدیک تخت خوابش بذارن. از اون به بعد هر وقت چشمش به مجسمه میافتاد میگفت می گفت ای جان وفادار کاش میتونستم زندگی تو رو برگردونم. سالها پشت سر هم سپری شد. ملکه صاحب دو پسر دوغلو شد که هرچه بزرگتر می شدن بیشتر موجب شادی و دلخوشی پدر و مادرشون بودن. یک روز که ملکه بیرون رفته بود و دو پسر با پدرشون بازی می‌کردن، ناگهان چشم پدر به مجسمه افتاد. غمگین شد، آهی کشید و گفت: کاش میتونستم زندگی تو برگردونم. در این لحظه مجسمه قدرت تکلم پیدا کرد و جواب داد: تو تونی زندگی رو دوباره به من برگردونی، مگر اینکه از چیزی که بیش از همه دوست داری بگذری. پادشاه فریاد زد، من حاضرم هرچی تو این دنیا دارم در راه نجات تو فراهم کنم. مجسمه گفت، خب، حالا که اینطوره، میتونی با دستای خودت سر دوتا بچت رو از تنشون جدا کنی و خونشون رو به مجسمه بمالی. اون وقت من زنده میشم. پادشاه از شنیدن این حرف وحشت کرد. در واقع وحشتانگیزم انگیزم بود که برای نجات یک نفر دو فرزند دلبندش رو با دستهای خودش بکشه و خون اونها رو به مجسمه بماله تا مجسمه جون بگیره. ولی وقت به یادش اومد که جان چه فداکاری کرده و حتی خودش رو به خاطر اون به خطر انداخته دیگه تردید نکرد. شمشیرش رو از قلاف بیرون کشید و سر فرزندان دلبندش را از تن جدا کرد و خون اونها رو به مجسمه مالید. در یه چشم به هم زدن مجسمه جان گرفت و جان وفادار صحیح و سالم جلوی شاه ایستاد و گفت فداکاری شما در حق من بی پاداش نخواهد ماند. بعد همونطور که حرف میزد سر بچه ها رو برداشت، سر جاشون گذاشت و با خون خودشون زخمهاشون رو ترمیم کرد. این کار با مهارت و سرعت بسیار انجام گرفت. طوری که چند لحظه بعد بچه ها چنان دور اتاق جست و خیز میکردند که انگار هیچ اتفاق نیافتاده بود. قلب پادشاه سرشار از شادی بود. اون وقتی متوجه شد که همسرش از بیرون برگشته جان و بچه ها رو وادار کرد که خودشون رو تو گنجه پنهان کنن. همین که همسرش وارد اتاق شد پادشاه پرسید آیا بیرون که بودی دعا کردی؟ همسرش جواب داد بله دعا کردم. من همیشه به یاد فداکاری های جان هستم که چطور به خاطر ما زندگی خودش رو از دست داد. پادشاه گفت همسر عزیزم ما میتونیم اونو زنده کنیم ولی این کار به قیمت جان دو فرزندمون تموم میشه. یعنی باید اونها رو قربونی کنیم. رنگ از صورت ملکه پرید و وحشت کرد. انگار قلبش از کار ایستاده بود. با این حال گفت اگر بچه رو فدا کنیم باز هم در مقابل فداکاری های جان کاری نکردیم. پادشاه که می دید، همسرش در این مورد با اون توافق داره زوغ زده شد. در گنجر رو باز کرد و بچه ها و جان رو صدا زد و گفت خدا رو هزار مرتبه شکر، جان دوباره به زندگی بازگشت و فرزندانمون هم زنده هستند. سپس پادشاه همه ماجره رو مو به مو برای همسرش تعریف کرد. اونها از اون پس تا آخر عمر در آرامش و خوشی زندگی کردند.